با درود خدمت بینندگان عزیزو گرامی و با سپاس از مسئولین و مجریان تلویزیون رنگین کمان که این فرصت رو در اختیار ما میذارن تا بتونیم راجب تاریخ و جامعه شناسی کشورمون سخن بگیم مطلبی که قبل از شروع این بخش چهارم باید به خدمت شما ارز بکنم عبارت از این است که بنده در بخش دوم دوچار دوتا اشتباه شدم تذکری بود که به وسیله یکی از بینندگان عزیز به من داده شد یکی از این اشتباه ها تاریخ صدور فرمان مشروطیته من در بخش دوم همون اوائل بخش دوم اشتباهن صدور فرمان مشروطیت را چارده مرداد 1286 گفتم که درستش چارده مرداد 1285 بنابراین اصلاح میکنم دومین دو اشتباهی که من دوچار شدم البته خب باید پوزش بخوام از بینندگان گرامیم این است که در حساب کردم در حدود دقایق 11 بخش دوم اشتباها نام دو تا کتاب رو عوازی گفتم من اینجا ها رو حضورتون نشان خواهم داد آنجا که سخن از قتل عام دلاوران تبریز به وسیله خشونه روس راستخوان روسی بود من دستناد به کتابی کردم که این کتاب رو اشتباه من جلوی دوربین میگیرم نامه های لندن از تقیزاده اسم بردم در صورتی که کتابی که باید اسم میبردم نامه از تبریز میبود به گمانم علت اشکالش بر اینه که هر دو کتاب رو تقیزاده نوشته من تا این نامه های لندن از دوران سفارت تقیزاده در انگلستانه و این نامه‌هایی از تبریز از دوره قتل عام مردم تبریز به وسیله هوای روسیه بود. همونطور که از کردم در این تاریخ تقی در تبریز بود و هر روز که این فجایع اتفاق می‌افتاد با تصاویری که در اختیارش بود یا می‌گرفتن یا به کمکش می‌اومدند گروهی تاریخ اون روز رو نامه می نوشت به ادوارد براون ادوارد براون یکی از بزرگان علم و دانش انگلیسی بود که موقع در لندن بود و ادوارد براون این نامه های روزانه را رو منتشر می کرد در مشریات و سپس تمام اینا رو جمع کرد و کتابی به نام نامه های از تبریز نوشته ادوارد براون به زبان انگلیسی منتشر کرد و سپس آقای حسن جوادی این کتاب رو به زبان فارسی برآورد. بنابراین این رو هم اصلاح می کنم. همین کتاب که از فرصت استفاده می کنم که فجایع روس‌ها رو در واقعه تبریز با تصاویرشون بیان کرده ارز کردم که اینها رو روزها میکشتند، به دار میکشیدند. و یا عکس محمدخان امیر تومان در, در طرف راست و کریم خان برادرزادگان خان این جوانان را به گناه برادرزاده بودن ستار خان گرفتند و به دار کشیدند. و یا تصاویری بود از جنایات سمت خان شجاع دوله سمت خان شجاع دوله آنچه که میکرد وحشتناک بود یوسف خان حکم رو من اینه میخونم یوسف خان حکم که به امر ها و به دست هاش سمد خان شجاع دوله دو شقه کردند دو شقه میکردند نردبانه میذاشتند دو شقه میکردند اینان مثل مغازه قصابی در پیاده رو در ماورای عمومی یک شقطه را در این طرف آویزان میکردند و یک طرف رو در نبردون دیگر بنابراین بنده این رو هم اصلاح میکنم با این مطلب میپردازم به بیان ادامه زندگانی کسروی بخش چهارم تا آنجا رسیدیم که به این مرحله که کسروی هرچی که میاموخت در تمام فرصتها اوائل معلمی براش نبود همین گونه از فرصتها استفاده میکرد و مطالب رو میاموخت و بعد از آن به زبانهای فراوانی هم مسلح شد یاد گرفت که اینا هم گفتیم در اون تاریخ در این زمان بود که کسروی در مقابل از این تاریخ به بعد انتقاداتش رو در مقابل فاسد و مفسد شروع کرد من ده این مطلب رو تا آخر سخنانم هر چند بخش باشه در مورد کسروی خواهم گفت برای اینکه یکی از مشخصات کسروی است کسروی بزرگترین مطلبی که ما بود با دربارش بگیم همین نقد و انتقاد بود از فساد و فاسد و چون عمری در کنار ملایان بسر برده بود خانوادش همتون که در اول گفتیم چهار نسل ملا بودند در یک خانه‌ای که فرهنگ ملایی داشت فرهنگ فاسد ملایی داشت بنابراین این هم با اون عجین شده بود با اون فرهنگ نیشنخت خوب ولی حضورتون از کردیم که چگونه کس خودش رو از این فرهنگ آلوده کشید بیرون. علاوه بر این مدرسه طالبی مدرسه ملایی رو دیده بود باز گفتیم در بارش گفتیم که چگونه ملایان فساد میکردن دروغ میبفتند و بنابراین تمام زندگیش اولین عملش اولین قدمش مبارزه و بلویان بود و به همین دلیل هم جانش رو میدونیم که از دست داد برای این مطلب ارز کردم اولین گروهی که عدف انتقاده قرار گرفت روحانیان دین بودن و این بیش از هر کسی دیگری از اونها آگاه بود به هر حال برای اینکه روشن کنیم که چگونه و به چه ترتیب چش در چش فریاد میزد بر سر فاسد به یک مطلبی که خودش در کتابش نوشته اشاره میکنیم در سال نوروز 1296 گرسوی میره برای دیدار نوروزی به منزل یکی از دوستان از اون تاریخ، در اون تاریخ، در اون فرصتها یک قحطی بزرگی در ایران اتفاق افتاده بود اینو در کنار ارز کنم که این قهتی فقط مختص ایران نبود که گروهی ورداشتند و مسائل سیاسی رو سوارش کردند قهتی در تمام دنیا بود در تواریخ 1917 و بعد از جنگ اول یک بیماری اسپانیولی در مملکت در دنیا اتفاق افتاد 100 میلیون نفر را کشت خب طبیعتاً ایران هم جزو دنیا بود و به ایران هم سرایت کرده بود و بعد قحطی پیش اومده بود و از مردم کشت کشتار میکرد کسروی میگه که هر موقع از محله گوچه که حکم آباد میامدن بیرون 6 تا هفت تا نه تا ده تا مرده میدیدم که از گرسنگی از بین رفته بودن جان داده بودن کسروی در این تاریخ از طرف محل انتخاب شده بود برای تهیه پول تا بتونن آردی تهیه کنن و نان درست کنن برای این گرسنگان می نویسه میگه که من به منزله این بزرگان و این تجار میرفتم اغلب پول نمیدادن با آن همه ثروت و داراییشون که خودشون سفرششون سفره رنگارنگ رنگ بود دیناری پول نمیدادن گویا تا عادی خریداری بشه و به فقیف و بدن. خب مطلبی که می هستش میگه اون پول رو جمع میکردن بعد میرفتن زیارت. به همسایش داره می میره از گروسنگی می میره پول نمیده ولی اونو جمع میکنه بلند میشه میره زیارت حسین و عباس و پیغمبر و عمروسید و در همین رواله که میگه در سال 1296 قحطی وحشتناکی در کشور رخ داده بود به طوری که تنها در محله حکم آباد هر روز نزدیک به ده تن از گروسنگی میموردند در همین روزها کستوی به انوان بازدید نوروزی این از کتاب خودش می به منزل یکی از دوستان نشرفته بود در این هنگام، یکی از مشتهدان سرشناس به نام حسن علیاری میگه اونم به همین هدف یعنی دیدار نوروزی یا پستادن دیدار نوروزی به منزل همین دوست کستوی وارد شده میگوید که وارد شد و نشست بلا فاصله گروهی از تجار ثروتمند، که از پیروان و مقلدین این آقا بودند آمدند دست به سینه و آقا اجازه نشستن داد دستش رو بوسیدند بعد عرض کردند حضور آقا آقا ما آمدیم از شما اجازه بگیریم که عآزم زیارت حضرت سیدالشهدا ش... سید بشویم چه میفرمایید؟ آقای علیاری این مشهد گل از گلش میشکافه لذت میبرن اینا دست بوسی اصلا در نهاد اینها هست تصور این چل سال چل دو سال تمام دست اینا رو برای ما رو کرده آقای علیاری میگه که به شما عجل جابر ابن عبدالله داده خواهد شد. فرشتگان چشمهایشان راه است. کرسدی که شاهد این مسئله هست با چون این دین و مرید فریبی به یک باره از دست می و خروش بر می و می و میگوید در پیش جمع مریدانش و صاحب خانه خطاب به این مشتهد میگوید گوید آخوند چه می چرا اینها رو فریب می اینها کسانی هن که هم سایگان و خیشان خود را از گرسنگی کشتند، کسرلی خود شاهد این جریان بوده. اینها کسانی هن که هم سایگان و خیشان خود را از گرسنگی گشتهند و نزد خدا روسیا خواهند بود. جابر بن عبدالله 1300 سال پیش بود، از دیروز گفتگو کن که زنهای بیوه سر فرزندان نیمه جان خود را بشینه، می کاس و در یک جا از گرسنگی جهان میدادند. باز می در ادامه این مطلب که بلا فاصله آقای مشهد دست به اصها برد و بلند شد میگه اول من ترسیدم تصور کردم که می خواد برم بزنه بعد دیدم لنگ لنگان سرش این بلند شد رفت. جوابی نداشتن بدن اینا چه جوابی می بدن؟ مردم مرد می مردن. بشته میشدن از گروس نگی آقا میگه خداوند به شما عجی جواب ابن عبدالله رو خواهد داد چرفایی که میزدن برخال قاطعیت و شجاعت و بیپروائی و فاشکو یک در مقابله با فساد و فاسد و دو و خائن و دروف و لحظه ی از وجودانه شد و تا آخرین روز زندگیش جزو شخصیتش به شمار میرفت به طوری که در 28 سال پس از این واقعه یعنی در سال 1624 درست چند ماه قبل از کشته شدنش این مطلب رو در یکی از مطالبش نوشته من عادت نکردم سخنی را برخلاف حقیقت بشنوم و به دفاع قاد باشم و خودداری نشان دهم او همچنین تا آخرین لحظش اینو اصلح مصلاح بود تا آن عبارت از بود قلم و سخن او همیشه با این دو اسلحه به جدال نامردمی ها می رفت رفتار عمالش و اعمالش نیز با آنچه که می گفت و می نوشت همسو بود علاوه بر آن وی در کنار مبارزات اجتماعیش لحظه ای از مطالعات علمی غافل نبود همیشه مطالعه کرد در هر فرصتی مطالعه می کرد مطالعاتم بیشتر در موارد استاع و دینی و تاریخی بودن ما می بینیم که وقتی در این سن پ ساله ای که این مرد داشته هفتاد و چند جل کتاب از خود به جای گذاشته به حال کار شبانه روزیه که این کار رو, رو کرده و اولین کاری که کسوی در این مورد نوشته کتاب چست به نام ان نجمت و دورقیه در راه روش یادگیری زبان عربی است. این کتاب به زبان عربی تعلیف شد به دنبال این کتاب مدارس و مؤسسات تحصیلی تربیتی به سراغش آمدن تا زبان عربی تدریس بکنه به طور کلی قبل از این مسئله هم کستوی بارها گفته و نوشته که مهارت خاصی در زبان عربی داشت قرآن رو چندین بار بررسی کرده بود خونده بود تفسیر کرده بود بنابراین کستویی عربی رو خوب می دانست پس از پایان این کتاب پس از انتشار این کتاب تندها دبیرستانی که در اون تاریخ بود به نام دبیرستان دولتی بود به نام دبیرستان فیوزات به سراغش آمد و کسروی رو به انوان معلم درس عربی در اون دبیرستان استخدام کرد و این خود گشایشی بود از نظر مالی در زندگی کسوی. خب در،, در کنار این زندگی علمی و انتقاداتی که داشت زندگی اجتماعی که داشت کسلوی زندگی سیاسی هم داشت عرض کردم حضورتون بازم خواهم گفت کسلوی انجمنی تشکیل داده بود که در این انجمن میشستن محرمانه بود انجمن میشستن و سخن میگفتند و به اصلاح وضع مملکت رو بررسی میکردند من تا خودش میگه چند نفر بودیم اسم هیچ کدومش هم در خاطراتش بیان نکرد در همون سال 1296 که بیان کردم به خراسانی و جنبش خراسانی پی بست من در بخش دوم حضورتون عرض کردم و گفتم که آنجا که تاریخی به تاریخی ما برمیخوریم که به کسزوی مربوط باشه در کنار کسزوی باشه برای اینکه که رو خوب بشناسیم و در این حال تاریخ مملکت من رو خوب بشناسیم بای... به اون تاریخ اشاره خواهم کرد این جنبش خیابانی یه جنبش خیلی معتبری بود که در اون تاریخ در مملکت ما مشکلات فراوانی در این حال که مشکلات فراوانی به وجود آورد برای حکومتیان مرکزی در تبعیض هم بندی فراوانی شد در اون مقابل گروهی طرفدارش بودند و حالا هم همین مساله رو مطرح میکنن که عمل نیکی بود و گروه دیگه میگفتن نه این جدای خواهی بود و از این قبیل به هر حال من وارد بحث خوبی یا بدی این جنبش نمیشوم فقط به کتابی که خود کسروی در مورد قیام شیخ محمد خیابانی نوشته شده این کتاب ویرایش و مقدمش به وسیع محمدعلی حمایون کاتوزیانه. من با اشاره از این کتاب یک مختصری در چند دقیقه این واقعی خیابانی رو حضور بینندگان گرامی عرض میکنم تا بدونیم چی گذشته در اون تاریخ که کسری هم رفته عضو این جنبه شده خیابانی یک ملایی بود که ابتدا اولین آشنایی که با کسوی داشت وقتی کسوی به مدرسه طالبیه رفت تا در اونجا ملا بشه خیابانی در اونجا خدمت رو ارز بکنم که درس هیئت بدلم یوز تردیس میکرد و خیابانی با... کسوی با خیابانی آشنا شد به معلم و شاگرد و از اونجا علاقه کسوی به خیابانی خیلی زیاد شده بود مدتی بعد خیابانی از این مدرسه اومد بیرون در یک در محله خیابان در یک مسجدی پیش نماز شد بعدشم با خانواده خامنهی نسبت سببی داشته و مدتی هم در مسجد جامعه تبریز به جای پدار پدر زنش به نام حاجزت حسین خامنهی پیش شد یعنی او رو به جای اون شاید مثلا مریض بوده نبوده مسافرت بوده این آقای خیابانی به جای پدرزنش پیش نماز شد در مسجد جامعه تبریز حضورتون ازم که اون چیزی که اعتبار این در بین مردم تبریز و احترامی که در بین مردم تبریز پیدا کرد از این بابت بود که در دوره جنگ های یازده ماهه تبریز با قواه مرکزی محمد شاهی قبل از اینکه کار به جنگ با محمد شاه برسه ملایان تبریز که اقلبشون طرفتار استبداد بودن در محلی شتربان تبریز انجمنی تشکیل داده بودن به نام انجمن اسلامی اوباش شهر را به خصوص اوباش همین شتربان رو در اونجا جمع کرده بودن به عنوان نظامی و بعد اینا حمله کردن در مقابل تبریز زمانی که تبریز میخواست قواه بفرسته به تهران اون موقع سخن جنگ در تبریز نبود. تبریز تصمیم گرفته بود قواه بفرسته به تهران در علیه محمد علی شاه. هنوز قواه در باسمنج بود چند فرسخی تبریز که اینا شروع کردن به تبریزیان حمله کردن و اون قواه هم مجبور شد برگرده برای حمایت از احالی تبریز و به دین وسیله جنگ قبل از محمد علی شاه جنگ بین مردم تبریز مجاهدان تبریز با این انجمن اسلامی که ملایان در راسش بود انجام گرفت مدتی طول کشید تا این انجمن مغلوب شد عقب نشینی کرد در انجمن بسته شد ملایان فرار کردند. خب در این درگیری شیخ محمد خیابانی ب... اه... که ملا هم بود به اون انجامنی ها نپیوست در تبریز بود و جزو مجاهدین جنگ کرد بر علیه ملایان اشاره کنم در اینجا حضورتون که در اون تاریخ وقتی با سخن ملا میگیم ملایان در شرایط ایجوری نفرت انگیز رو نداشتن ملایان گروهی بودن که میتونستن مبارزه بکنند به نفع مشروطیت زیرا که در اون تاریخ همشون امامه داشت و عبا داشتن یه دولت آبادی دقیزاده تعداد فراوانی از این روشن فکرها امامه و عبا داشتن خیابانی هم جزبه یکی از اینا بود که واقعا در اون تاریخ خوش درخشید و مورد محبت مردم تبویز شد در این تاریخ که پس از این که جنگ های مجاهدین با جنگ های تهران به پایان رسید و مجاهدین شمال از رشت و قوای اصفهان حمله کردند، اومدن تهران رو گرفتند. وقتی که یعنی در اصفهان بودند، آمدند تهران رو گرفتند، مجلس دوم برقرار شد. مجلس دوم از بیست دوم آبان 1380. هش بود تا دوهم دی ماه 102090 یکی از روشن ترین مجالسی که ما داریم همین مجلس دوم بود همین مجلس دوم بود که مبارزات فراوانی کرد اگر راهش میدادند خدمات زیادی مملکت ما کرده بود ولی متاسفانه همون روزها که در ایران در تبریز قتل آم کردن در رشت قتل آم کردن به طور کلی در گیلان قتل آم کردن در خراسان قتل آم کردن در همون تاریخ در تهران هم سه تا اولتیماتوم فرستادن تا الکش مفصله یکی رو ایرونی ها همین مجلس از آمریکا استخدام کرده بودند که بیاد وضع دارای مملکت رو به اصلاح کنه به نام مورگان شوستر این آدم اومده بود ولی در اون تاریخ به دنبال قرارداد 1907 قراردادی بود که اصلا ایران خبر نداشت آقایون انگلیسی و روس نشستن کناره هم این قرارداد رو بسن ایران بین خودشون به سه منطقه تقسیم کردن شمالش مال روسا، جنوبش مال انگلیسی ها و سطیه باریکهی هم گذاشته بودن که خب تهران و یک دوتو شهر بود که اینها هم مال خود ایران باقی بمونه همین آقایین روسی تمام شمال ماملیکت ما رو گرفته بودن واقعی تبریز گیلان خوراسان به دنبال همین قرارداد هزار هفت بود حتی من بارها گفتم بنباران مجلس به وسیله محمد جا هم قدوم آله قرار داده هزار نه بود خب در این تاریخ مجلس شورای ملی مجلس دوم شورای ملی در مقابل الٹیماتوم هایی که روسیه میدار می کرد. چندین بار دولت از مجلس خاص که برای به روان ساختن همین مرگان شستر برگردوندان مرگان شستر به آمریکا تصویب کنه این مسئله رو برنگی روزها میخواستن نمیتونستن یک آمریکایی رو در رأس امور مملکت ما ببینن از اون مسائله همون روزها که امروز همه کاری مملکت ما شدنان همین روزها که امروز دستشون در دست حکومت ماست همین بالاترین جدایت رو در مملکت ما کردن تاریخ رو ما اگه ورق بزنیم از 1715 زمان پتر کبیر تا امروز روزها هر موقع فرصت کردند مملکت ما رو تاراج کردن قارت کردن 17 شهر ما رو از ما گرفتن و امروز عزیز گرامی شدن در بین حکومتگران مملکت ما متاسفانه به هر حال سخنم را در اینجا با این ترتیب پایان خواهم داد که در دوم دی ماه 1290 به اخری به دستور ابوالقاسم قراگوزلی ناصر ملک نایب السلطنه بود یفریم خان که اون موقع رئیس شهربانی بود با نظامیانش وارد مجلس شد هیچگاه در تاریخ ایران بعد از اون تاریخ بعد از این مجلس دوم تا زمان انقلاب اسلامی هیچ وقت قوای وارد مجلس نشد تا مردم ها نماینده ها رو از مجلس با تیپا اخراج کنه. قوای یپرم خان وارد مجلس شد به دستور حکومت به دستور دولت. این نماینده هایی که مقاومت می در مقابل روسیه اینا رو بزور از مجلس اخراج کردند و در مجلس رو گل گرفتن از اون تاریخ بود که دیکتاتوری در مملکت ما نمایان شد دیکتاتوری دوباره در زمان بعد از مشروطیت سال 1290 بود بدون شک رضا شاه دیکتاتور بود کسی منکر این نبود ولی این نیست که پایه دیکتاتوری را در مملکت ما رضا شاه گذاشته تاریخ روشن میکنه هزار در مجلس و بعد از بستن در, در مجلس همین آقای نایب السلطنه تمام نشریات رو در مملکت بین برد زبانها رو بست کسی قلم نمیتونست کار ببره بگذرم خیابانی کسانی بود از کسانی بود که در مجلس دوم به شدت مبارزه کرده بود با روزها در مقابل روزها و از این بابت هم باز اعتبار و محبتش بین مردم و به مردم آزربایجان و تبریز بیشتر شد بنده بقیه مطلب رو در بخش پنجم خدمت عزیزان خواهم گفت روزتون بخیرم